عزیزان، همه ما میدونیم که کلام قدرت داره. شک نیست که شما حتما به خاطر میارید. با کلامی کسی تشویق شدید یا به شدت رنجیدین. سلام و به درس دیگری از دانشکده یک کتاب مقدس که تعلیم ایسای مسیح به عنوان سر کوه رو مطالعه می کنیم، خوش اومدین. امروز معلممون کمک خواهد کرد که بفهمیم کلام ما چقدر مهمه و چطور باید. با خدا و دیگران صحبت کنیم حالا این شما و این معلمه ما با درسی عملی از کلام خدا همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شده قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما اما من میگویم به هیچ وجه قسم یاد نکن نه به آسمان زیرا که عرش خداست نه به زمین زیرا که پاینداز اوست نه به اورشلیم زیرا که آن پادشاه بزرگ است و نه به سر خود زیرا که قادر نیستی موی از آن را سیاه یا سفید کنی سخن شما فقط بلی یا خیر باشد زیاده بر این از شیطان است آیاتی رو که شنیدید از مطابا به پنج آیات 33 تا 37 بود جایی که به گوش کردن در مورد توضیح عیسی در مورد فلسفه از کلام و اعمالش یا روی کردش نسبت به قانون خدا ادامه میدید یادتونه قبل از این در آیات 17 تا 20 عیسی به شاگردانش همونجا بالای کوه گفت چیزی که داره بهشون تعلیم میده موافق با کلام خدا خواهد بود. به روح کلام خواهد رسید اما چیزی که بهشون تعلیم میده موافق با آنچه که کاتبین و فریسیان به اونها تعلیم داده بودن نخواهد بود. پس از اعلام بیانیه در اون پاراگراف آیات 17 تا 20 حالا در پاراگراف های بعدی که با این کلمات شروع میشن شنیدید که گفتند اما من به شما میگویم عیسی در حال توضیح دادن و به کار بستن اون بیانیه در مورد روی کرد خودش نسبت به کلام هست و البته داره به شاگردان که به اونها در اولین گردهمایی همایی مسیحی تعلیم میده میگه تمام اون انسانها رو اون پایین میبینید، اگر قرار شماها بخشی از راه حل من و بخشی از جواب من به تمام مشکلاتی که اون انسانها دارند باشید باید این روی کرد به کلام رو درک کنید شما باید بدونید که چطور پیش از آنکه قانون خدا رو بر زندگی انسانها اعمال کنید اون را از منشور محبت خداوند رد کنید اون پایین نرید و درست مثل کاری که فریسیان و کاتبین میکنن با کلام خدا توی سرشون بزنید چون نوشته می کشه. میتونید انسانها رو نابود کنید. اگر اونها را با کتاب مقدس بزنید، میتونید اونها را با کتاب مقدس نابود کنید. شما باید خودتون روح قانون رو بفهمید و در زندگی شخصیتون کار بگیرید و بعد در حین کار بردن کلام در زندگی های دیگران روی روح قانون رو استفاده کنید. با به وجود آوردن اون اصل در آیات 17 تا 20، 6 پاراگراف بعد به دنبالش میان که ایسا به دقت در مورد اون بیانیه توضیح میده. او با مثالی گفته های خودش رو روشن میکنه و اعمال میکنه چیزی که او در این پاراگراف ها تعلیم میده علاجی جامعه برای موضوعاتی که او با اونها سر و کار داره محسوب نمیشه. یادتون باشه او داره برای ساختن اصل خود و توضیح دادن و اعمال کردنش تصویرها رو یکی پس از دیگری مرتب میکنه. او به این افراد در بالای کوه که، من معتقدم همشون مرد بودن، گفته که چطور کلام خدا رو در روابط زندگی های شخصیشون کار ببندن و در خوشابهالها به اونها گفته که به درون نگاه کنن و حالا داره به اونها میگه که به اطراف نگاه کنن و خوشابهالها رو در روابطشون اعمال کنن. خیلی از محققین احساس میکنند که معزه سرکو واقعا خوشابهالهاست و خوشابهالها معزه هستند و بقیه چیزها کاربورد هستند. خب قطعا در باب پنج خوشابهال ها تعلیم هستند و باقی باب کاربورد هست. او داره به این مردها که به درون نگاه کردن نشون میده که چطور به اطراف نگاه کنن و خوشابهال ها رو در روابطشون به کار ببندن. برای مثال نسبت به برادرشون، به دشمنشون، به زنان و به همسرانشون. ما به پاراگرافی که ایسا همسرانشون رو ذکر کرده نگاه کردیم. او طلاق و قانون خداوند در مورد طلاق رو ذکر کرد و من فکر می کنم خیلی مهمه که پاراگراف ما قبل اون باید با زنا و رابطه با جنس مخالف می پرداخت. حتما شنیدید که میگن بهترین دفاع همده است و کتاب مقدس به خصوص در کتاب امثال این رو میگه بهترین دفاع بر ضد گناه زنا داشتن یک ازدواج خیلی خوبه. اون هم برای یک زن و هم برای یک شوهر صدق می کنه. امروز اون بیرون وسوسه بیشتری وجود داره و بهترین دفاعی که بر ضد اون وسوسه دارید البته به علاوه قوت روح القدس برای محافظت کردن شما از گناه داشتن یک ازدواج خوب و موفق هست. یک ازدواج فیزیکی خوب. چون زمانی که بین مردم میرید، اگر نیاز شما از قبل برآورده شده باشه، آسیب پذیری شما به طور چشمگیری کاهش پیدا میکنه. مخصوصا کسانی که دوست دارند با شما مرتکب زنا بشن یا شما دوست دارید با اونها مرتکب زنا بشید در پاراگرافی که خوندیم آیات 33 تا 37 عیسی دوباره داره یک چیزی تعلیم میده که کاتبین و فریسیان انجامش دادند که او مخالفش بود بعضی وقات در این ها پی خواهید برد که عیسی میگه به شما گفته شده برای مثال مرتکب زنا نشوید خب اون فرمان رو در کتاب مقدس می‌بینید اون فرمان هفتمه. اون از کتاب خروج باب 20 آیه 14 است زمانی که او در مورد طلاق صحبت میکنه از کتاب تسنیه 24 یک است اون در کتاب مقدس بود اما الان زمانی که عیسی درباره قسم خوردن میگه توجه کنید که مرجعی وجود نداره به یاد داشته باشید کاتبین و فریسیان در تعلیماتشون فراتر از کتاب مقدس میرفتند اونها چیزی داشتند که به اون سنت میگفتند حساب اون در مرقص باب هفت و متا باب پانزده به عنوان سنت مشایخ که دقیقا کنار کتاب مقدس قرار دادن و احتمالا به اندازه کتاب مقدس هم گرامی می داشتن اشاره کرده. شاید بیشتر از کتاب مقدس هم گرامی می چون خودشون اون رو تعلیف کرده بودن. به نظر میاد که این یکی از اون چیزهای سنتی هست که عیسی الان ذکرش میکنه. ظاهرا اونها یک رسم داشتند. یاد داده بودند که هرگز نباید عهدی را که با خدا بستی بشکنی اما زمانی که وارد سنت کاتبین و فریسیان میشید واقعا چیز عجیبی میبینید اونها سیستمی برای سوگند خوردن یا قسم خوردن داشتن این امکان داشت که بگن به معبد قسم میخورم یا به طلای معبد قسم میخورم یا به مذبح قسم میخورم یا به قربانی روی مذبح قسم میخورم امکان داشته به آسمان یا به زمین یا به اورشلیم قسم بخورن ظاهرا سنتشون این بوده اما سیستم خیلی پیچیدهی بوده افرادی که در دایره درونی بودن می که اگر شما به چیز خاصی قسم خوردید بگذارید برای مثال بگیم به معبد اون وقت قسم شما لازم الاجرا بوده اما اگر به طلای معبد قسم خوردید لازم الاجرا نبوده یا اگر به مذبح قسم خوردید لازم الاجرا بوده اما اگر به قربانی روی مذبح قسم خوردید دیگه لازم نبوده یا بالعکس یک سیستم خیلی ای بود و فقط اونهایی که در دایره درونی بودند واقعا میدونستند که کدوم یکی از این سوگندها لازم الاجرا بوده و کدامشون نبوده اون سیستم بسیار ای بود و واقعا یک سیستم غلط بود کاری که عیسی در اینجا داشت انجام میداد گفتن این بود که اونها کلا روح قانون رو نسبت به این مسئله قسم خوردن از دست دادند یک فرمان وجود داشت تو نباید شهادت دروغ بدی حالا اون فرمانی از خداوند بود و نگفته بود که شما هرگز قرار نیست که دروغی بزرگ در مقایسه با یک دروغ کوچک بگید ما انواع مختلف دروغ داریم دروغهای کوچک دروغهای بزرگ اما واقعا فرمان نمیگه تو نباید دروغ بگی فرمان میگه شهادت دروغ ندهید تصوری نادرست ایجاد نکنید مهم نیست که چطور انجامش میدید اگر تصوری نادرست ایجاد کنید یا شهادت دروغ بدهید روح اون فرمان را شکسته اید ببینید فرمان تو نباید دروغ بگی واقعا با صداقت یک شخص سر و کار داره اون روح قانونی که در قلب اینه اما اونها از روح قانون خیلی دور شده بودند و غرق در نوشته قانون شده بودند و در واقع با این سیستم پیچیده قسم خوردن شهادت های دروغ داده بودن. عیسی همه اونها را قطع میکنه و میگه بگذارید که بله شما بله یا نه شما نباشه هر چیزی فراتر از اون از شیطان هست هر چیزی فراتر از اون باعث گساسته شدن روح فرمان میشه که میگه تو نباید شهادت دروغ بدهی ما باید امروز این رو درک کنیم که یکی از راه راه‌های دادن شهادت دروغ گفتن حقیقته اما گفتن فقط بخشی از حقیقت یا با گفتن حقیقت خارج از چهارچوب. افرادی که در رسانه هستن توی این تخصص دارن با گفتن حقیقت خارج از چارچوب با گفتن بخشی از حقیقت چقدر ساده است که شهادت دروغ بدهید اما میدونید روح فرمان میگه که مردم باید قادر به اعتماد به صداقت شما باشن زمانی که میگید بله اونها میدونن که منظور شما بله است زمانی که میگید نه اونها میدونن که منظور شما نه است هر چیز دیگری غیر از این از شیطان میاد چون داره از روح فرمان که میگه شهادت دروغ ندهید دور میشه سالها قبل که من کشیش جوانی بودم ماشینی برای رانندگی به من داده شده بود پدرم برای داشتن یک اتومبیل خیلی فقیر بود و من در نوجوانی امکان داشتن ماشین و رانندگی نداشتم وقتی از کالج فارغ و تحصیل شدم به عنوان کشیشی جوان در کلیسایی مشغول خدمت شدم حیعت رهبران کلیسا ماشینی در اختیارم گذاشتند هنوز یاد نگرفته بودم که سرعتم رو کنترل کنم. آموزش رانندگی رو از مدرسه گرفته بودم، اما اصلا تجربه رانندگی واقعی نداشتم. همینطور جریمه سرعت میگرفتم، چون یاد نگرفته بودم سرعتم رو کنترل کنم. یادم یک بار وقتی یک گروه از جوانهای کلیسا رو توی ماشین با خودم داشتم، پلیسی منو متوقف کرد. اون ماشینی بدون آرم پلیس میروند. ما بیرون شهر بودیم. صدای آژیری که داشت از ماشینش میومد. اصلا نظرم رو جلب نکرد داشتم از مقابل یک کارخونه رد می شدم و فکر کردم اون صدای آژیر ظهر کارخونه است وقتی بالاخره پلیس توجه منو جلب کرد و منو متوقف کرد به من گفت که چندتا قانون رو در مدتی که دنبالم بوده شکستم خیلی عصبانی بود گواهینامه رانندگی من و با خودش برای نوشتن احساریه ترافیکی برد توی ماشین مدتی گذشت و بعد وقتی دوباره پیش ماشین من اومد یابو من منو بدون احسار پس داد و گفت تو واقعا باید بدونی که قانون شکنی کردی اما من فقط به یک دلیل بهت اجازه میدم که بری و علتشم اینه که من پدرت رو میشناسم وقتی که او به گواهینامه رانندگی من نگاه کرده بود ظاهرا فکر کرده بود که پدر منو میشناسه همون همونطور که گفتم پدر من حتی یک ماشین نداشت او هرگز به اون محل نرفته بود او اهل جای دیگه ای بود بعد فهمیدم که اونجا در دولت محلی یکی از مقامات بلندپایه هم اسم پدر من بوده و برای این بود که اون افسر پلیس فکر کرد پدر من همون شخصه گفت پدرت مرد بزرگی حالا تو چنین موقعیتی من چیکار باید می کردم؟ من به این موضوع فکر نکرده بودم و بنابراین تمام اون چیزی که در جواب بهش گفتم این بود بله پدرم واقعا مرد بزرگیه حالا اون گفته حقیقت داشت چون پدر من مرد بزرگی اون مرد با خدایی بود و یک ایماندار خوب بود تمام کاری که کردم این بود که به سادگی با اون افسر موافقت کردم و توضیح درستی رو در مورد پدرم دادم. بعضی از جوانها در ماشین نزدیک بود که بخندند چون فهمیدند که پلیس فکر کرده بود که پدرم رو میشناسه. خب متوجه شدید که چه چیزی رو درم توضیح میدم. برای شکستن فرمان شهادت دروغ ندهید. شاید حتی موافقت با یک جمله که حقیقت داره کافی باشه. در موقعیتی مثل اون روز که من در اون قرار داشتم شکستن اون فرمان با سکوت هم ممکن هست. وقتی که بعدن راجبش فکر کردم فهمیدم که به افسر پلیس تصور غلطی ندادم فقط تصور اشتباه او رو اصلاح نکرده بودم اون موقع خیلی جوونتر از الان و نو ایمان بودم فکر نمی کنم که الان دست به چنین کاری بزنم اما آیا متوجه میشید که من چه چیزی رو دارم توضیح میدم روح این قانون در قلب این پاراگراف در آیات 33 تا 37 یکی از ده فرمان هست شهادت دروغ نده بر اساس اون فرمان کاتبین و فریسیان یک بدنه کامل از قانون و مقررات ریز رو اختراع کرده بودند که کاربرد اون فرمان رو تحریف میکرد اما به قول عیسی اونها فقط دنبال راه بودند که شهادت دروغ بدن و خودشون رو همچنان مذهبی جلوه بدن در مورد کتاب مقدس عیسی داره بالای کوه به شاگردانش میگه من موافق روشی که آنها کتاب مقدس رو تفسیر میکنن و به کار می گیرن نیستم. در مورد سنت خب او داش میگفت من با سنت اونها و حکم های ریز و درشتی که علاوه بر حکم خداوند اختراع کرده موافق نیستم و به این وسیله اونها رو رد میکرد. همون چیز در پاراگراف بعدی هم صدق میکنه. آیه 38 میگه شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان. اما من به شما می گویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی میزند زند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند کت خود را هم به او ببخش هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک مایل راه مجبور نماید دو مایل با او برو به کسی که از تو چیزی می ببخش و از کسی که تقاضای قرض میکند روی نگردان حالا داریم به پاراگراف‌های واقعاً سخت باب 5 متا می رسیم. این یکی و بعدیش به عنوان سخت‌ترین متون کل عهد جدید در کتاب مقدس در نظر گرفته شدند. برای درک کردن این ها بیایید دوباره کاری رو که عیسی داره اینجا انجام می‌ده به یاد بیاریم. او داره چیزی که در آیات 17 تا 20 بیان کرده بود رو توضیح می‌ده که روی کرد او به کتاب مقدس مثل روی کردی که رهبران مذهبی داشتن نبوده. رهبران مذهبی داشتن تعلیم میدادند و البته این بر اساس کتاب مقدس هم بود چون میتونید در کتاب خروج لاویان و تسنیه اونا رو ببینید چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان اما من معتقدم که عیسی اینجا داره میگه من با روحی که اونها دارن در اون تعلیم میدن موافق نیستم چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان دوباره باید به ابتدا برگردیم و بپرسیم زمانی که خداوند این فرمان‌ها رو در کوه سینا بر موسی الهام می‌کرد چه چیزی در قلب خدا بود هدف ازدواج چی بود به این روح قانون گفته میشه. عیسی واقعا در مورد برگشتن به عقب و پرسیدن این که هدف تمامی اون چی بود و آیا شما این قانون رو به روشی که با هدف خداوند و اصل اساسی خدا سازگاره به کار می‌گیرید ماهره زمانی که به عقب به جایی که این قانون در خروج لاویان و تسنیه داده شده بود میرید، همونطور مثل قانون طلاق، خداوند در حال تلاش برای مهار کردن میل طبیعی قومش برای انتقام بوده. او داشت حد و مرزی برای اونها میگذاشت. اگر کسی به دندونشون ضربه میزد، طرز برخورد اونها این بود که میگفتند من گردنشو میشکنم. اگر کسی چشمشونو درمی آورد، طرز برخوردشون این بود که من میکشمش. اون میلی طبیعی برای انتقام در انسانیه که تولد دوباره نداره. میل به کینه و انتقام. اون ادالت نیست. بلکه ادالت باید اینطور طور می بود. چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان. اما انسان ها اگر یک چشم یا یک دندان را از دست بدن فقط ادالت نمی‌خوان اونها انتقام می‌خوان و این نیاز به دادخواهی داره. امروز وقتی به برخی از این دادخواهی ها نگاه می‌کنید واضح میشه که برخی مردم عدالت نمیخوان. اونها در بعضی از این دادخواهی ها که امروزه راجبش میشنویم خیلی فراتر از عدالت میره. اینجا دوباره عیسی داره در مورد روح قانون خداوند صحبت میکنه. پیش از اینکه حکم خدا رو بر زندگی های شخصی خودتون یا زندگی های دیگران اعمال کنید، حکم خدا رو از منشور محبت خدا، از منشور هدف خدا، از منشور اصلی که خدا در ذهن داشت زمانی که این حکم رو میداد رد کنید. خدا داشت میل به انتقام انسانها رو مهار کرد. زمانی که گفت اگر دندانی را از دست دادید تمام چیزی که میتونید به جاش بگیرید یک دندونه و بعد شما باید همونجا متوقف بشید چون ادالت همونه اگر چشمی را از دست دادید تمام چیزی که می گیرید یک چشمه حالا عیسی از اون فراتر میره خیلی فراتر وقتی که میگه اما من به شما میگویم با شریر مقاومت نکن حتما شنیدید که میگن زندگی اون بیرون مثل یک جنگ بین سک هاست واقعا شرایط بدیه اون مثل همون طوریه که هست اون مثل همونطور که گفتن یک جنگ بین سک هاست خیلی گیج کننده و استرسزاه هست اما شاید چیزی که ایسا اینجا داره میگه اینه گوش کنید شما سگ نیستید آیا شما اون بیرون با سک های دیگه میجنگید چون شما هم فکر میکنید که یک سگ هستید چیزی که عیسی میخواد در پاراگراف بعدی بهش برسه این سؤال عالیه شما چه کاری رو بیشتر از دیگران دارید انجام میدید وقتی که در مورد محبت کردن حتی به دشمنان صحبت میکنه اینطوری عنوان میکنه شما چه کاری رو بیش از دیگران انجام میدید به پایین تپه نگاه کنید تمام مردم اون پایین رو میبینید خیلی خوب زندگی مثل یک جنگه حالا زمانی که اون پایین میرید به چه روشهایی قرار متفاوت باشید آیا به روشی که به اون مردم نشون بدید که راه دیگه هم میتونه باشه زندگی خواهید کرد؟ لازم نیست که اونطوری که حس باشه، لازم نیست که یک جنگ باشه، باید متفاوت باشید. همونطور که نمک برای جلوگیری کردن از فاسد شدن گوشته، باید متفاوت از گوشت باشه، شما هم باید متفاوت باشید. بنابراین چیزی که باید انجام بدید اینه که به مردم اون پایین نشون بدید که راه متفاوتی وجود داره راه دیگه ای وجود داره یک راه درست وجود داره و چطور راه درست رو شرح میدید؟ چطور اون رو تعلیم میدید اون میگه در مقابل شریر مقاومت نکن طرف دیگه صورتت رو برگردون و اگر اونها از تو شکایت کردن بگذار نه تنها زیری بلکه کت بیرونیت رو هم بگیرن در اون روزها سربازان رومی فاطح میتونستن شهروندان یهودی رو مجبور به حمل کوول برای حدود دو کیلومتر بکنن. وقتی که از یک شخص یهودی درخواست انجام دادن اون کار میشد، اونها کاری جز اجابت کردن نمیتونستند بکنن. اونها مجبور به انجام دادنش بودند. اما باید نگرش وحشتناکی در حین اجابت کردن میداشتند. عیسی داره میگه اگر مجبورت کردن که دو کیلومتر بری، چهار کیلومتر برو. و زمانی که کسی چیزی ازت میخواد، به او بده و روی خودت را رو از کسی که از تو چیزی قرض میخواد برنگرد. عیسی اینجا چی داره تعلیم میده حالا این رو به یاد داشته باشید اگر خوشا ها رو مثلا خوشا فقیران در روح رو درک کردید به یاد داشته باشید که یک راه برای تفسیرش گفتیم و اون اینه خوشا شکستگان در روح تمامی این تعلیمات به شاگردان داده شده بود و یک شاگرد چی بود بر طبق لغا باب 14 یک شاگرد کسی بود که عیسی رو در مقام اول زندگی شخصی خودش قرار میداد او مایل به برداشتن صلیبش و پیروی از عیسی بود. معنیش اینه که حاضر بود برای عیسی بمیره. مایل به قرار دادن عیسی در جایگاه اول پیش از تمامی انسان‌های دیگه زندگیش بود. پدر، مادر، شوهر، همسر، فرزندان و همه کسانی که براش عزیز بودند و ایسا رو برتر از هر مالی که در زندگیش داشت میدونست. عیسی گفت: "همچنین اگر شما حاضر نیستید تمام هستی خود را از دست بدهید، نمیتونید تونید شاگرد من باشید اگر کسی به این اولین گردهمایی مسیحی اومده بود و چنون عهدی رو با عیسی بسته بود که من مایلم صلیبم رو بردارم و به دنبال تو بیام من مایلم که برای تو بمیرم اینجا در این درس عیسی به سادگی داشت به اون شخص نشون میداد که کجا از او خواهد خواست که بمیره و چرا از او خواهد خواست که بمیره و چطور از او خواهد خواست که بمیره یکی از چیزهایی که در این دو پاراگراف آخر مدتا پنج درک کردنش برای ما خیلی مهمه اینه که اگر شما از قبل اون تعهد رو به عیسی دادید، اگر تصمیم گرفته اید و مایلید که برای او بمیرید، پس اولین واکنش به این تعلیم نباید این باشه، خب اگر اون کار رو بکنم، اونها چیزی رو که دارم ازم میگیرم، یا ممکنه حتی زندگیم رو از دست بدم. این واکنشیه که اکثر مردم وقتی این رو میشنون نشون میدن. واکنش اکثر مردم به این تعلیم با شریر مقاومت مکن اینه که اونها خواهند گفت خب اگر از شریر دوری نمیکردیم ممکن بود همه چیز رو از دست بدیم. خب اینو به یاد داشته باشید. هدف نهایی انسان جلال دادن خداست. بعضی ها میگن که اولین اصل تمدن حفظ جانه. نگرش دنیا اینه که شما حق حفظ کردن و حراست کردن و نگه داشتن زندگی شخصیتون و هر چیزی که متعلق به شماست رو دارید. اما اون از مبنای آمدن به مسیح نیست. کتاب سوال و جواب دینی وستمینستر میگه هدف نهایی انسان جلال دادن خدا و لذت بردن ابدی از حضور اوست. در پاراگراف هایی مثل اینها آیا ممکنه که عیسی به ما بگه چطور کهی کجا و به چه روشی باید خدا را جلال بدیم من فکر می کنم که درک کردن این هم مهمه که عیسی اینجا ها رو مخاطب قرار نداده عیسی منظورش نظم چیزها از نظر جامعه نبود او داشت به شاگردانش تعلیم میداد که چطور نور و نمک این جهان باشند بخشی از راه حل او بخشی از جواب او به تمام مشکلات این جهان باشند وقتی به این تعلیم می رسید که میگه با شریر مقاومت نکن به اون فکر کنید. به نظر من این به معنای آن نیست که نباید در مقابل انسانهای ستمکار در جامعه مقاومت کرد. آیات خیلی زیاد دیگه ای وجود دارند که یاد میدن که دولت و قانون از طرف خداوند اومده و همچنین چیزی به عنوان یک مأمور مجری قانون وجود داره که خشم خداوند بر شخص بدکار رو نشون میده چون اختیار استفاده از شمشیر بیهوده به او داده نشده. خدا اون شمشیر یا اسلحه رو توی دست او گذاشته وقتی سایر متون کتاب مقدس رو کنار هم قرار میدید عیسی نمیگه که با شریر در کل دنیا و در جامعه مقاومت نشه بلکه تنها در قلب شاگه عیسی داره به شاگردانش میگه اگر میخواهید نمک زمین و نور جهان بشید اون وقت باید اونطوری که من به کتاب مقدس نزدیک میشم به اون نگاه کنید و باید به کلام از نظر روح قانون نگاه کنید همون روشی که من انجام میدم وقتی به این پاراگرافای مشکل در متا پنج میآیید از خودتون سوال کنید آیا من چنان اهدی با عیسی مسیح بسته‌ام؟ آیا من لایق این هستم که شاگرد عیسی مسیح خونده بشم؟ آیا مایلم که صلیبم رو بردارم و برای او بمیرم؟ آیا من واقعا خودم رو بر روی صلیب گذاشتم و خودم با مسیح مصلوب شدم؟ زمانی که اون چیزها سر جاشون باشن و فقط وقتی اون چیزها سر جاشون باشند شما میتونید چنین پاراگرافی رو که در این درس راجبش تعمق کردیم درک کنید. دوستان در سر تا سر موزه سرکوح ایسا به ما شاگردانش تعلیم میده که معنی حقیقی شاگردی چیه. امیدواریم که شما در ایمانتون رشد کنید و با امید و دلگرمی خداوندمون پر بشین تا شاگردی بشین که اون شما رو به اون فراخونده. دائما اینه که وقتی در رابطتون با اون رشد میکنین متعهدتر باشین و بیشتر در دسترس اون باشین تا شما رو به کار بگیره. حالا تا برنامه‌ی بعدی، امیدواریم که شما رفتار مسیح رو داشته باشین و کسی باشین که کلام اون و کلام خودتون رو برای بنای دیگران به کار می‌برین.